سوره قصص نبای موسی بالحق لقومی یؤمنون الله <تصفيق> که بخشا گنده است تاسیمی اینها آیات کتاب بیان کننده حقایق هست به خاطر اهل ایمان سرگذشت موسی و فرعون را به حق بر تو فرعون در زمین برتریجویی کرد و مردم را فرقه فرقه نمود به طوری که گروهی را مستضعف نگاه داشت پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را زنده نگاه می داشت بی شک او از تبهکاران بود ما اراده کردیم که بر مستضعفان نعمت دهیم و آنها را پیشوا و وارسان روی زمین قرار دهیم و به مستضعفان در روی زمین قدرت دهیم و به فرعون و هامان و لشکرهایشان عذابی را که از آن می ترسیدند نشان دهیم و به مادر موسی وحی کردیم که موسا را شیرده و اگر بر جانش بیمناکی، او را در دریا بیفکند و نترس و غمگین مباش ما او را به تو باز میگردانیم و از پیامبرانش قرار میدهیم. آنگاه خانواده فرعون او را یافتند تا دشمن و غم جانکاهشان باشد. زیرا فرعون و هامان و لشکرهایشان از خطاکاران بودند. همسر فرعون گفت او را مکشید زیرا مایه روشنی چشم من و تو شاید برای من سودمند باشد یا او را به عنوان فرزند من برگزینیم. بدانید که آنها حقایق پشت پرده را درک نمی کردند و قلب مادر موسا تویی شد و اگر قلب او را به ایمان قوی نمی کردیم تا از مؤمنان باشد نزدیک بود آن راز را فاش کند و به خواهر موسا گفت برو و طفل را زیر نظر داشته باش هنگام این که خواهر از دور به او می فرعونیان نمیفهمیدند. ما پیش از این شیر هر زن شیردهی را بر موسی تحریم کرده بودیم تا فقط از شیر مادر خودش بخورد آنگاه خواهرش به فرعونیان گفت آیا میخواهید شما را به خانوادهی معرفی کنم که تفت را برایتان نگهداری کنند و خیرخواه او باشند؟ بدینسان موسا را به مادرش برگرداندیم تا روشنی چشمش باشد و غمگین نشود و اینکه بفهمد بعده خدا حق است هرچند که اکثر آنان نمیدانند و چون موسا انسانی بالغ و کامل شد به او حکمت و دانش عطا کردیم ما اینچنین پاداش نیک کاران را می دهیم. و موسا هنگامی که اهل شهر در غفلت و بیخبری بودند به آن وارد شد ناگهان دو مرد را دید که به جدال پرداختند یکی از پیروانش و دیگری از دشمنانش. در این هنگام آنکه پیرو موسی بود از او کمک خواست موسا دخالت کرد و با مشکی طرف دیگر را نقش بر زمین کرد. موسی گفت این کار از عمل شیطان بود. برای او برای انسان یک دشمن گمراه کننده واقعی است. قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. انه هو الغفور الرحيم موسا گفت پروردگارا من به خود ظلم کردم پس مرا بیامرد خدا او را بخشید زیرا آمرزنده و باگذشت است گفت پروردگارا به برکت نعمتی که به من عطا کردی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم شد روز دیگر که موسی وحشت زده و محتاط در شهر میگشت دید همان کسی که دیروز او را به کمک طلبیده بود دوباره از موسی کمک میخواهد. موسی به او گفت راستی تو یک گمراه واقعی هستی پس هنگامی که خواست آن مردی را که دشمن هردو آنها بود به سختی تنبیه کند آن مرد گفت ای موسا آیا می خواهی همانطور که دیروز یک نفر را کشتی مرا هم بکشی تو می خواهی در این سرزمین ستمکار باشی و از مسلحان نباشی در این هنگام مردی از نقطه دور دست شهر شتابان آمد و گفت ای موسا بزرگان شهر برای کشتن تو به مشورت نشستند از شهر خارج شد که من خیر خواه تو هم. وحشت زده و نگران از شهر خارج شد و گفت پروردگارا من را از دست ستمکاران نجات ده هنگامی که روی سوی شهر مدین کرد گفت امیدوارم پروردگارم مرا به راه درست و نجات بخش راه نمایی کند وقتی به چاه آب شهر مدین رسید گروهی از مردم را دید که چهارپایان پایان خود را آب می دهند و در کنارشان دو زن را دید که مشغول گوسفندان خیشند به آنها گفت کار شما چیست؟ آن دو زن گفتند ما گوسفندان را آب نمی دهیم و منتظریم که چوبانها همگی گوسفندان خود را بازگرداند بدان که پدر ما شیخ کبیر است موسی گوسفندان آنها را آب داد سپس به زیر ای رفت و گفت پروردگارا هر خیری که نصیبم کنی به آن محتاجم ناگهان یکی از آن دو زن در حالی که در نهایت شرمهیا راه میرفت به سوی موسی آمد و گفت پدرم تو را میخواند تا مزد آب دادن به گوسفندان را به تو پرداخت نماید. هنگامی که موسا به سراغ پدر آمد قصه خود را برای او باز گفت. پدر گفت نترس که تو از دست ستمکاران نجات یافده ای. یکی از آن دو زن گفت ای پدر او را استخدام کن که اگر چنین کنی بهترین مرد قوی و امین را استخدام کرده ای. پدر گفت میخواهم یکی از این دو دختر خود را به ازدواج تو در بیاورم به شرط که به مدت هشت سال در استخدام من باشی و اگر به ده سال رساندی خدمتی از جانب تو خواهد بود من نمیخواهم کار طاقت فرسایی بر ادت بگذارم و الله مرا از سالحان خواهی یافت موسا گفت باشد این قراردادی است بین من و تو پس هر یک از این دو مدت را سفری کنم وظیفه را انجام دادم و ستمی بر من نخواهد بود و خدا بر آن میگوییم می‌گوییم وکیل است پس هنگامی که موسی آن مدت را به اتمام رساند با خانواده‌اش راهسفارش شد از سوی کوه تور آتشی را دید. به خانوادهش گفت لحظهای درنگ کنید من آتشی دیدم میروم تا شاید خبری از آن برایتان بیاورم و یا شعله از آتش را برای گرم شدن تان برگیرم و نزدتان آورم انگامی که نزد آتش رسید از سمت راست آن سرزمین مقدس از آن درخت ندایی آمد که ای موسا منم الله پروردگار جهانیان اصایت را بی انداز. وقتی این کار را کرد دید مثل ماری می موسا بازگشت و از وحشت به عقب نگاه نکرد ای موسا جلو بیا و نترس تو در امانی دست خود را در گریبان ببر تا سفید و درخشنده و بیعیب خارد شود. دست خود را بر سینت بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو دلیل روشن از جانب پروردگارت به سوگ فرعون و اشراف اوست زیرا آنها جماعتی زشکار و بدسیرتند موسا گفت پروردگارا من یکی از آنان را کشتم و به همین خاطر می ترسم مرا بکشند برادرم هارون نسبت به من زبان فصیحتری دارد او را همراه من رهسپار سفار کن تا تصدیق کننده و یاور من باشد زیرا می ترسم که مرا تکذیب کنند خدا گفت بازوان تو را به واسطه برادرت نیرومند میکنیم و به شما قدرت و برتری می دهیم و به برکت آیات ما بر شما چیره نخواهند شد بدانید که شما و پیروانتان پیروزی. پس هنگامی که موسا آیات و معجزات روشن ما را نزدشان آورد گفتند این چیزی جز جادوی دروغی نیست و ما چنین چیزی را تا به از نیاکانمان نشنیده‌ایم. و موسا گفت، پروردگار من، به آن کسی که هدایت را از نزدش آورده و به کسانی که آقابت نیک سراغشانه است، آگاه تر است. بدانید، او ظالمان را رستگار نخواهد کرد. فرعون گفت، ای درباریان، غیر از خودم خدای دیگری برای شما نمی شناسن. ای هامان، آتش کوره را بر خشتهای خام بیافروز و برجی بلند برایم بساز، تا از آن بالا روم و از خدای موسی اطلاع یابم هرچند که او را از دروغ گویان می فرعون و لشکریانش متکبرانه و به ناحق در زمین سرکشی کردند و گمان بردند که هرگز به نزد ما باز نمی گردند. پس او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا انداختیم بینگر عاقبت ظالمان چگونه بود و آنها را از آن دست پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش دعوت می کنند و در روز قیامت یاری نخواهند شد در این دنیا نیز نفرین پی در پی نصیبشان کردیم و در روز قیامت از زشت خواهند بود بعد از آن که مردم روزگاران پیشین را حلاق کردیم به موسی کتاب دادیم تا برای مردم بصیرت و هدایت و رحمت باشد امید آنکه پند بگیرد آنگاه که به موسی فرمان پیامبری دادیم تو نه در جانب غربی تور بودی و نه از حاضران ما نست های را پدید آوردیم که طول عمر درازی داشتند حالان که تو در میان مردم شهر مدین نبودی که آیات ما را بر آنها بخوانیم اما این ما بودیم که پیامبرانی میفرستادیم تو در کنار کوه تور نبودی هنگامی که ما موسی را ندادادیم بدان این رحمتی از سوی پروردگارت است تا مردمی را که قبل از توش ای نداشتند هشدار دهی شاید پند بگیرند و اگر به خاطر دستاوردشان مصیبتی آنان را گرفتار کند گویند پروردگارا اگر پیامبری را به سوی ما میفرستادی از آیات تو پیروی میکردیم و می میشدیم پس هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا آنچه به موسی داده شده به او عطا نشده است آیا پیش از این به همان چیزهایی که به موسی داده شد کفر نورزیدند و گفتند که موسا و هارون هر دو جادوگرند دست به دست دادند تا فریبکاری کنند و گفتند ما به هر دوی آنها کافریم بگو اگر راست میگویید پس کتابی از جانب خدا بیاورید که مردم را بهتر از این دو کتاب هدایت کند تا من نیز پیرویش کنم چونان که جواب تو را ندهند بدان که آنها از هواهای نفسانی خود تبعیت می و چه کسی گمراه تر از کسی است که بیان که از خدا راهنمایی بخواهد از هوای نفسش پیروی کند بدانید که خداوند ظالمان را هدایت نخواهد کرد برای آنها آیات را پیوند دادیم و مرتبت کردیم تا شاید حقایق را دریابند کسانی که پیش از این به آنها کتاب آسمانی عطا کردیم به قرآن ایمان میآورند وقتی آیات بر آنها خوانده شود گویند آن را باور کردیم به راستی حق است و از جانب پروردگارمان است و ما حی جزآن تسلیم هرک شده بودی. هلائکا یتول اجرهم مرتین بی ما صب و یذراآن بالحسنات السيئات و می ما رزقناهم یُنفقون. اینان به پاسه صبر و استقامتی که کردند. دوبار پاداش خواهند گرفت اینان بدی را با نیکی از بین میبرند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنند و چون سخن لغو و بیهودهی بشنوند از آن روی برمیگردانند و میگویند ما مسئول اعمال خیش هستیم و شما نیز مسئول اعمال خودتان سلامت باشید به سلامت ما در پی جاهلان نیستیم ای پیامبر، اینطور نیست که هر کس را تو دوست داشته باشی میتوانی هدایت کنی بلکه این خداست که هر کرا سلاح بداند هدایت می کند. و او نسبت به هر کس دیگری از هدایت یافتگان آگاه تر است می‌گویند اگر از آین تو پیروی کنیم، ریشه ما را از سرزمین من بر می کند. آیا ما آنها را در حرم امنی قرار ندادیم؟ جایی که همه نوع سمرات به آن سرازیر می شود این رزقی از جانب ماست هرچند اکثرشان نمیدانند. و چه بسا اهل شهرهایی که سرمست از زندگی مرفعشان بودند و ما نابودشان کردیم و این خانه هایشان است که جز مدت اندکی کسی در آنها ساک نگشت و ما وارثان آنها بودیم پروردگار تو؟ هرگز شهرها را نابود نمی‌کنند، مگر آنکه قبل از آن را در مرکز آن مباآس کنند تا آیات نجات بخش ما را بر آنها بخواند و بدان که ما هیچ شهری را نابود نکردیم، مگر آنکه مردمش ظالم و ستمکار بودند. آنچه به شما داده شده است مطاع دنیا و زینت های آن است. در حالی که آنچه نزد خداونده است از هر چیز دیگری بهتر و مندگارتر است چرا تعقل نمی کنید؟ آیا کسی را که به او وعده نیکو داده و قطعا هم با آن میرسد، با کسی که از نعمتهای دنیوی بهرمندش کردیم و تازه باید در روز قیامت هم برای جواب دادن حاضر شود همانند است؟ روزی که آنها را ندادهد گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ کسانی که حکم عذاب آنها محقق شده گویند پروردگارا اینها کسانی بودند که ما گمراهشان کردیم ما چون خود گمراه بودیم گمراهشان کردیم اکنون از آنها بیزاری می و به سوگ تو می آنها هرگز ما را عبادت نمی کردند. با آنها گفته شود اکنون شریکانتان را بخوانید و چون می هیچ جوابی با آنها نمی دهند. و عذاب الهی را که ببینند آرزو می کنند که ای کاش از هدایت یافتگان بودند روزی که آنها را ندادهد گوید هنگامی که شما را به حق می خواندند چه جوابی به پیام دادید؟ در این روز خبرها بر آنها پوشیده می شود حتی نمی توانند از یک دیگر سآل کنند اما کسی که توبه کند و به حقایت ایمان بیاورد و عمل کرده نیک داشته باشد امید است که از رستگاران شود پروردگار تو آنچه بخواهد خلق می کند و برمیگزیند در حالی که آنها هیچ اختیار ندارند. منزه است خداوند بزرگ و بلند مرتبه تر از است که برایش قائل می شود و پروردگار تو آنچه را در دلهایشان پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند می داند و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والآخرة، وله الحكم واليه ترجع او الله است و هیچ معبودی جزو نیست ستایش مخصوص اوست چه در دنیا و چه در آخرت و حکومت از آن اوست و همه به سوی او باز می گردید. بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب تاریک را بر شما تا روز قیامت طولانی کند کدام خدا به جز الله می به شما نور برساند؟ چرا حقایق را نمیشنید. بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را بر شما تا روز قیامت طولانی کند کدام خدا جز الله میتواند شب را به شما ارزانی کند تا در آن آرامش یابید چرا حقایق را نمیبینید و این از رحمت الهی است که شب و روز را برای شما ایجاد کرد تا در یکی آرامش داشته باشید و در دیگری در جستجوی رزق و فضل الهی روید شاید که شکرگزار نعمت ها که الهی شوید روزی که آنها را ندا دهد گوگت کجا و شرکایی که برایم میپنداشتید؟ روزی که از هر ملتی گواهی برگیریم و بگوییم دلائلتان را بر افتراهایی که زدید بیاورید آنان میدانند که خدا حق است و تمام آن افتراها که میبستند از دیدشان گم خواهد شد قارون مردی از قوم موسی بود که بر آنها ستم کرد ما به او گنجهایی دادیم که حمل کلیدهایش برای گروهی از مردان قوی بنیه سخت و طاقت فرسا بود. بیاد روزی که قومش به او گفتند ای قارون این همه مغرورانه خوشحالی مکن زیرا خداوند شادی کنندگان این چنین را دوست ندارد. ای قارون در آنکه که خداوند به تو عطا کرده سرای آخرت را بجو. و قسمت غیش را در دنیا فراموش مکن. گزار باش. و نیکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است. و راه فساد و تباهی در زمین پیش مکن، زیرا خداوند تباه کاران را دوست ندارد. قارون گفت: آنچه به دست آوردم، دستاورد دانش و علم خود من است. آیا نمیداند که خداوند مردمان بسیاری را قبل از او حلاق کرده است کسانی که قدرتمند از او و ثروتمندتر از او بودند بدانید هنگامی که عذاب فرارسد مجرمان را در باره گناهانشان سوال نکنند زیرا مهلتی نخواهد بود قارون آراسته به تمام زینتهای خود به میان قومش آمد و آنان که آشق زندگی دنیا بودند گفتند کاش آنچرا به قارون دادند ما نیز می به راستی او بهره عظیمی دارد اما کسانی که به آنها آگاهی عطا شده بود گفتند وای بر شما پاداش الهی برای کسانی که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کرد خوب داشته باشند از هر چیز دیگری بهتر است و این پاداش فقط برای صابران خواهد بود سرانجام قارون و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم در حالی که هیچ گروهی در برابر مجازات الهی توانایی یاری او را نداشت و او خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری کند و کسانی که دیروز آرزو میکردند به جای او باشند گفتند وای بر ما این خداوند است که روزی هر کس را بخواهد فراوان می و یا برو تنگ می گیرد. اگر خدا به ما چون قارون منت ناده بود، اکنون ما را نیز به زیر خاک می بود. وای که کافران هرگز رستگار نمی شود. این سرای پرآرامش و زیبای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین تکبر و برتریجویی و تباهی نکنند. بدانید که عاقبت خیر برای کسانیست که حرمت خداوند را نگاه می دارند من جاء بالحسنت فله خیر منها و من جاء بالسیئت فلا یجزل لذین عملو آتی الا ما کنو يعملون. هر کس کار نیکی انجام دهد بهتر از آن پاداش می بیند و هر کس کار بدی مرتکب شود بدانید بدکاران به اندازه عمل کردشان مجازات می شود همان کس که قرآن را بر تو ابلاغ کرده است تو را به جاگاه اصلیت برمیگرداند بگو پروردگار من بهتر می چه کسی در راه هدایت است و چه کسی در گمراهی واقعی اگر رحمت پروردگارت نبود تو هرگز امید نداشتی چون این کتابی به تو القا شود پس شکر گزار باش و هرگز از کافران پشتیبانی مکن مراقب باش پس از آنکه قرآن بر تو نازل شده تو را از آیات الهی منحرف نکنن همباره مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش و هیچگاه خدای دیگری را با الله مخوان زیرا هیچ معبودی جز او نیست همه چیز نابود چودنیست مگر آنچه که سوی او دارد موجب رضایت اوست حکومت از آن اوست و همه به سوی او باز می‌گردند ولا تدعو مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع صدق الله العلي العظيم <Marvel> گفت خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیانبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم